امروز در اتوبوس با یک مرد آشنا شدم او اهل جیرفت بود جیرفت یکی از شهرهای کویری ایران است نزدیک کرمان من دانستم که جیرفت به کویر نزدیک است ایران چند کویر دارد؟ دو کویر اسم یکی دشت کویر است و دیگری کویر لوت آب در کویر بسیار کم است مردم در آنجا چگونه زندگی می کننده؟ نزدیک کویر چند شهر هست ولی هیچ کس در کویر زندگی نمی کند دمای هوا در آنجا چقدر است در روز هوا خیلی گرم است بین پنجاه و شست درجه سانتیگراد اما شبها خنک است دشت کویر و کویر لوت کجاست دشت کویر در خراسان رضوی، قم، اصفهان، سمنان و یزد است و کویر لوت در خراسان جنوبی، کرمان و سیستان است. پس این دو کویر خیلی بزرگند. بله، شرق و مرکز ایران کویری است. در کویر هنر فرشبافی، و سفالگری وجود دارد. کشاورزی در آنجا چگونه است؟ درخت خرما و پسته در مناطق اطراف کویر زیاد است چون به آب کمی نیاز دارد.